شبهر زد سر از چرخ یکی فروز دو ظرف شب تیره بگرفت روز از اون چهاتر قیر بیرون کشید به دندان یا به ماه درخون کشید. از این بهتر اندیشه برناکتر با دو سلام خدمت شما چه روندگان رادیو و فرهنگ و برنامه پنجره‌های های او محتاب من همین چیز هدایتی ارات هستم در خدمت استاد فریدون جمدی هستیم. سلام را میکنم م چه شما بید ؟ود برای شما روزگار شما خوش. این شهر ریبایی فردوسی که شما خوندی، این شهر برای چی هست برای را که بیاتون باشی. باشی یک بار گفتم زیباترین منظره که خداوند برای ایت زمینیان آفره بود یه باده همه چند نه اون را بود فکرم نه پنش شیش موقع پیش خود بیشتر بود چون <تصفح> چند رو بود بکره تا دو مطره با اونجا نزید بله بله اه... شبه بیشتش دون ماهه که نزدیک که به ش یعنی همون هوابان تاریک باشه اونهای که میخوان که حدیه خداوند رو ببینن تاریک بیدار بشن و برن بالا پشتگوم اگر سعادت داشته باشن که شرق یعنی خراسان پشتگونه اونها پشتگونه بلند نباشه و بتونن دامنه کوه رو در جهت خراسان ببینن البته ایرانیان در شهرها ها همه این سعادت رو کمتر دارن این ساختگونه بلند جلو میگیره. اگر خونه طوری باشه که بتونی بتونید دامنه رو ببینید فردا شب نه امشب فردا شب نزدیک به سفیده از خواب بلند شید و برید بالا و این زیبا ترین منظری که خداوند برای جهانیان آفریده ببینید ما یک بار این تکرار میشه چرا بیدار نمیشیم چرا هایم این حدی خدابندی رو ببینیم این خیلی زیباست. من حالا هم تو که ارز کردم پر نخستین بار بر فراز مظور بابو توهیر اینا دیدم شب بود که بیدار موده بودم و نزید که شدیده گفتم دیگه افسوس که اگر ما دیگه بابا توهیر رو که پس من بیم از باشیم بیرون تا نمیدان و وقتی رفتم بالا این منظره رو دیدم ما به اندازه مثلا ما به میزان میار خودون بنزه مثلا یک دست دست باز اما اگر به میار جهان بسنچی مثلا بنزه یک کوه یه دره بزرگ باریک باریک, باریک بنزه یمو سفید آغوش شده به طرف خرسان. و کم کم نرم نرم نور خورشید به صورت نارنجی رنگ، نارنجی تیره از پشت ظاهر میشه. همطور که این نور نارنجیه به بیشتر میشه تا زرد بشه. ما هم همون رنگ رو خودش میگیره. نارنجی میشه زرد میشه تا اینکه دیگه خورشید از پشت کوبه یه حدی پرسید که نور پرتو خورشید خیلی زیاد باشه. هنوز خودش خورشید نیسته یه پرتو خورشید خیلی زیاد باشه و کم کم ماه در میان نور خورشید قرقه میشه این سی منظره رو ببینید ای فرزانگان ایران من چند بار باید بسید بگم من باید جایزه بذارم هر کس هفته دیگه به ما سنگ زد گفت که من دیدم از شب خوش خودش برای ما بگه من بعد من یه جایزه بشون بدم این جایزه خداییه که به انسان ها میده و ما حاضر نسیم ببینیم و نگاه کنیم حالا این شعر رو دوباره میخونم که بیشه میدید این شب نفره دو شب دو شب صبح بله بل بیستر با اونجایی خیلی وقت تاریف باشه بیدار که هم همه این منظری که من گفتن ببینم بله سعادها که حتما وقتی که ما ایرانی هستیم یه چیزی به همون حدیه میدنم صد بار سپاس کنیم یک اگر تو یک زرفی هدیه بدم ما سعی کنیم اون چوشی چیزی بذاریم گل بذاریم یک چیزی پس ندیم این زیباترین منظره خداوند رو چرا نباید سپاس کنیم چرا نب... نباید که روان خود پرواز بدیم یک بار دادیم اون وقت میبینید که من چی میگم یک بار خواهش میکنیم این شور و شاقش شما بایدید بایدید الخون از و روز، از آن چادری پیر بیرون کشید، به دندان لب ماه درخون کشید. می‌بینی چیزی که من گفتم؟ اینجی میشه و کم کم کم ماه. دی نمیشه یه من آمون میخواین دام دو روز شب تیره روز از آن چادرک بیر, بیر بیرون کشید به دندان لب ماه تخ کشید. و شور و نشات شوق برمون میگید که حتما باید این کار رو بکنیم پس فردا شب نه یعنی یعنی بامدادش هموز آفتاب نزده این کار رو باید بکنیم و ببینیم این این حیشی زدی این حیشی زدی این حیشی زدی این حیشی که دو هفته پیش یا هفته پیش بود که یه نامزدی پیام پرامزده بود که من نامزدن مردن رو میگذاریم ساعت نوهایم نهانیم شب برای برنامه شوانامه حالا نامزدان جوان ورده بذارن پالا پوش موقعی که این منظره زیبا خرید میاد سپاس بکنم ستایش بکنم یعنیم رو که این همه زیبایی برای ما آفرید و ما نگاه نمی‌کنیم. در حالت این زندگی ماشینی و این گرفتاری و این همیش عصبی و ازولانی و همه اینا موجب شده که ما به خوبی برخوردار نشیم از زیبایی های خوباً برای ما آفایی حالا امیدوارم این بار دیگه قرار قرارو همه خانه هاده ها با امید خدا از میکنم براتون که تلفن های برنامه 222-4185 222-418 هشتاد و پنج و بیست پانسد و هشتاد و هشت دو صفر دیویست و بیست پانسد و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پیامک سی هزار پانصد و پنجا و هشت سی هزار پاند و پنجا و هشت شما سؤالات خودتون رو مطرح بفرمایید دوستان من در ارتباتات هستند و صدای شما ر ضبط میکنند سؤالات شما رو ضبز میکنند و پرمک های شما میاد که اومده به سیاهی از اونها که من سریع میکنم در طول برنامه با توجه به موضوع برنامه اونها رو از اصال جنه بپرسم سوالات شما رو پایگاه اطلاعاتی ما www.radiofarhang.ir هست و از اینکه از فارسی زبانی که در ساعت تا سر هستند میتونم میتونن برنامه های ما رو اقوامشون یک که صدای ما رو میشنون بهشون بفرماید که برنامه های ما رو از طریق محباری حاتبر اون بخشی که رادیو هست راژیو فرهنگ رو بگیرم بشنون و برنامه ما رو بشنون یه محقه رو دیگه هم احس کنم که خیلی مهمم هم هست در طول این برنامه این دوست هم یعنی در فاصله این یک ساعت خوبی که ما در خدمه کمتر هم هست از آن در خدمت هستیم. فرکانس هستش در روی فرکانسش همه که فرحنگ روی موج اف ام که در تهران هست روی شما قدیم میگرفتید 106 ممیز 7 به دوستان بگید به به سباکیستانی که میشنوند صدای ما رو الان باید بگیرید روی موجه 106 فقط اونهایی که در تهران هستن رو اف ام میخوان بگیرد در شهرستانو ازونی که از موجی FM میخوام بیگیرم، بسیجی داره به شهرستانشون متفاوت فرضش. اما در تهران 16 ممایز، 16 فض، دیگر 16 ممایز خفنه، 16 فض. مستقلش خودت فرست. بالا خودش تو. و 558 نم AM یا هم MWU می بر برنامه ما رو بیش نم. 558 خوب بیسأ کنیم منتظریم که بشنیم ما امشب نگاه دی که خسرو رو بله. که داریم روی یهصدو یا صفحه یهصدو هفتو دفتر بیاری از جن بیاد بیاری که از طرف شیده از طرف عفروسیوما پسیام داد برای نبرد و قارن اون پیاند را گرفت و بشیده به که خسرو ابلاغ کردن شب گذشت جلو بوشن شد اون چاوره لاج ورد جهان شد به کدار یا بوت زرد خروشی بر اومد که ای شهر یار به آهن تنخی رنج مدارتون که قرار بود که خسرو شهران به تن خود جنگ شهان را همه تخت بودی میشه که که کین کمر بر میان تو بست. سپهدار با جوشن و گرز و خود بلشگر فرستاد چندی درود. شما هیچ دل را مدارید تنگ. چون این است آغاز و پرجام و جنگ. یک شبرنگ بهزاد را که دریافتی روز تگ را یعنی برنگام تکاوری و تاختن از باد جلو می میان دو سف شیده او را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید به دو گفت پور سیاه و تویی توی ای پسندی به ای چون این داد پلس و شهر شهرگار که ای شیر در رنده در کارزار منم داغ دل پوران بیگناه سیاه که شد کشته بردست شاخ و دین دشت از ایران به کین آمدن نه از بخره گاه و نگین آمدم کنون آرزه کنی که به دیدار دور از بیان سفا نهادن پیمان که از هر به یاری نیاید کسی کی نجوی برفتند هر دو زرشگر به دروی چون شود مرد شادان به سور دو نفر گوید که به سور میرفتند برای نورد برای می نورد میرفتند هر کسی بود که انگار برای سور دارم میرم اذا چند چن بتو افتاد این ما ها افتادها رو میخونم تا ببینید که اصلا چه چیزایی رو نوشتن بیا که آن از برابر رازن بود و دون جای مرز خوارز بود این دلیل نداره برای اینکه پیشتر گفته بودم که نزدیکی خوارز رسیدن جایی که شیر و پلنگ بدان شخ بی آب ننه چنگ خب حالا شما ببینید که اگر یک جاییه که شیر و پلنگ نمیتونن دستشو از بس که سنگ و صافه نمیتونن دستشون رو بذارن گیر میکنه عصب با چطور میخواد اونجا تا بکنه، بکنه. این شیبه افزایش افضاید رو کنه. همین همین رو یک بار دیگه ما در نور دوه دو بوده نور دوه دوه بهرام پروکشست پهلوان ایرانی با با قلوم با نه قلوم نه با پهلوان تورانی من هم چیزی یادم میکفتی تو فاصله تو فاصله بود تو فاصله بود نمیدونم یا تو فاصله بود یا تو نوع سلاح بود من نمیدونم بله من قطوره با این قرار بودش با بحران با هم دیگه قرار دول بودشم تو دو میدان شا افضلانگان همین به تو با دو بودن گذیدن از رسیدن اونجا چه شد جایی که شیر و پرنگ به دانشخ به آب نرهاد جنگه نمیشه میدونه شاه شیروپلنگ نیمده بشون جا نمیشه بعد شاه جایی باشه که عصب بتونه حرکت کنه شیروپلنگ نمیتونه حرکت کنه چطور عصب حرکت میکنه این کاره افزانده کنه بعدش هم میخونه نپرزید بر آسمانش اقاب از اون بحری شخ و بحری سراب اقاب آخه چرا نپرزید اقاب که کار نبید اقاب میتونه همه جا رو بپرزید بال بگیره د متاسفان هزار سال اینا تو شانم بوده و همه خوندن دیگه. نهادند آوردگاهی بزرگ دو اصباد دو جنگی بساند دو گرگ. به دو گفت شاها به تیق و سنان کند هر کسی جنگ و پیچد انام پیاده به هایت که جوییم جنگ به کردار شیران بیازیم جنگ به شیده گفت شاه جهان که ای نام داره از نژاد مهان زتخمکیان گمان بیگمان کف نبود که هردیز پیاده نبرداز بود یعنی سوار بودن برای فعلوانانی که امتیازی بوده و میبینید که جایی که پرشوتن برادر اسفندیار نصیحت میکنه برادرش که نه جنگ با روستن این پهلوان پیر به بجنگی درست نیست نبرد تو با این پهلوان پیر که اینجا اینطور میگه که شنیدم همه هرچه روستن بگفت سخونهاش با مردمی بود جفت نه سایت دوپای ورا بند تو نه اندیشه از فر اورند تو سوار جهان پور دستان به بازی سرندر نیارم بدام بپرستم که این خواهر کردن فراز به زابول میانه دفت کردن فراز اینجا ببینه که به رستن سوار جهان خطاق بکنه یعنی بزرگترین پهلوان جهان این طرق پازنام رستن بوده که پهلوان همه جهان بوده و بعد همین سوار در زبان فرانسه توجه میشه به شوالیه به کسانی شوالیه ها کسان که سوار عصد بودن و اسب داشتن و هر کمیون بر یک بخشی از سرزمین فلاسه بسر فرمان را بودن فرماندار بودن این کونت ها و وی کونت و دوک ها و اینا همه همه شوالیه بودن شوالیه اینی سوار اینی از, از نام سوار ایران گرفته شده حالا اینجا که خصوح همین یکی از تخمکیان و از کیان، هیچ پادشاهی پیاده نه، نشد از اسب که تو از من میخوای این کار بکنم من میکنم ولی, ولی کم تو را گرد از کام من پیچم زراویه. تو هرگز لگان فرود آمد از اسب شبرنگ شاه تو سر برگرفتم کیانی کلا به هامون چو پیلان براویختند به حامون چو پیلان براویختند. همی همین خوف آخون براویختند چو شیده بدیدان برا برز شاه همون ایزدی آن دستگاه همی جشت کو مگر زو رها چون فرزبن قریختن فرار کردن از از گوشتی بوده می‌بینید دیدین حتماً یه وقتی یه پهلوانی می‌بینی که زورش به نوسه مرتخو چون کیش تند عرب تن دادن عقب کیهان دادن عرب اینجا که جشت اومد همی جشت کو مگر زو رها که چون سرش بشود تن ندارد باها که آغاو شد خوشش از روی او وزن زور آن بالای او دیرفتش به چپ کردن و راست ران بر ورد و زد برزمین ناگهان همه منخوری پشت او همچنی بشد خورد و از ترس او ساز. اینجا چون پریمکان رو من یه مقداری میام جانب دواتون پریمکان خوبی مومده درود درود بیشمار و استاد خیلیتمند و پدر ایرانیان درود بر هدایتی مرد دلشاد برنامه نامم زریر مزارعی و نام پسرم شش شیسالم عباس یعنی شیر نرس دهش خود را کامل کنید پاژنام یا لقبی به نام من و پسرم و فامیل بدهید تا پایان بدن افتخار کنیم. کتاب تا پایان اون میکنه ده. که تا من میدم تا پایان اون بدون افتخار کنیم. سپاس هستیم به درود شاد باشید من شانومه بهتون رسید و بر... نامی پهلوانی بهتون رسید مطورم شروع کنید بخوندم در یک لحظه پاشنام و کلمان بخوام به شما بدم بخوید شما نه پاشنام به خود زریزو به شما بدم زریریش لغرض زریر پسر لغرضت، زریر لغرض من. بودن من حال وقتی من اساساً دوام کلمه می‌کنم، سو چوری ندارم. لعنت بودی. میخوای خدمت استاد جنیدی لود بفرمایند. روستای همت آباد شهر کنه و دارو سلام نیشابور دار بفرمایید دارای چه قدمت تاریخی هست و روستای بوش مهران به چه معناست؟ مچکرم بوش مهران پایین از مهر بیجو یعنی به لحجه خود نیشابوری بیج یعنی دره و شما اگر زبوروی بوشان ببینید عجیبترین دره بریده بریده رو که در کستان دیده نمیشه در بیجو یعنی بوجان که اسم در شده میبینید بیج مهرو خب این هم مهران که یعنی نامیست هم وابسته به مهره هم نام انسان میتونه باشه هم نام یک جایی که وابسته به مهر باشه و بژم هم که همون در رو هست. از دره بیجو وقتی به طرف پایین به بجمه رو میرسیم اما همه مطابعات اینا نام که بعدا گذاشته شده و در حقیقت قدمت شهرنش خیلی پیشینه داره و توی این کابوش اخیر دیده شده هر چقدر هم که میرن پایین در طبقات پایین تر یعنی که تمتون به فرهنگ بهتر بوده تا طبقات بالا من پیشنهاد میکنم اولا بجمه رو رو هیچگاه و همتابات رو ترک نکنید نهرید شهر زندگی بکنید ثانیان در اولین فرصت برید اون کوهشایی که شده در تپه نزدیک آرامکاه عطار رو ببینید, ببینید مردم چه زندگی داشتن و چطور اینا همه ویران شده شهر بسیار بزرگ و خوهن. خیلی خیلی خوب بوده که دیگه با حملات مغل و پیمور و بعد آخرین حمله ها حمله ترتلی شاق آجار بود و این دیگه از اون عظمت فرو گفتاد متاسفانه و چند داری فتایی شده ها من احساس بکنم برای این شاور تشکیل نبری؟ خواه البته میرم بگم خواه ایران هم من همه جا هستم این چیمی که من خودم کردم به نصف برسان و خودم گذاشت از اون در خود استودیو با هم صحبت میکنیم، بدون از مسئولیتی که دارید و کاری که دارید اینجا اما شما هم شده نشون بدم چیه، من نمیادن نشون بدم. بعد لطفا بگو لطفا من تقریبا آقای دکتر اصلا جنیدی به فارم تقریبا چند هزار واژه در زبان فارسی وجود دارد. بعد این میان چند تا عربی شاد باشم. درست باشه من که دو در خدا همکارانش در حقیقت جمع کردن دو میلیون دو و خبه از این دو میلیون بگیم 100 یعنی یک میلیونش نام ها باشند باز بازنونه یک میلیون و حتی اگر باز تیلیزاتان کم بکنیم 800 هزار این شکل افتنگیزی برید وقتی که اروپا فرهنگ فرهم کردن انگلستان برای خود ده هزار رو در آغاز حالا این واجه ها داره میشه بر بنیاد ریشه های واجه های که هند اما خوشبختانه ما همه این واژه ها رو از زمان باستان داریم اما نمیتونیم بیم که چقدر این عربیه بلی که خب عربی میشه بالین زبان کرد میشه نکرد خب مهم اینه که بزرگترین فرهنگی که تا به حال در جهان نوشته شده فرهنگی در خداست که لاغر یک میلیون صفحه داره این هیچ کشوری چین صفحه مایر در خودش نداره بله ام... با به استاد عزیز سیدون جمیدی و مجری نیشمنش آقای هداریتی سپاس من این میخونم <تصفح> حضرت استاد پاسخ برموین آیا تلاشی برای ارائه نسخه پیرایش شده شاهنامه به کتاب کانهای مرزی انجام گرفته است تا اندیشمندان دیگر کشورها به شاهنامه دست به شاهنامه شما دست داشته باشند یا خیلی بهروز تندرست روز شادکان باشید شاهروخ شاهنواز تهران درود بر شما که به این فکر هستید البته من برای کابل گرامی فرستادم برای هرات فرستادم برای بلخ, بلخ بامی که امروز میگم شریف برای تاجیکستان دانشگاه خوجند فرستادم برای سمرغند فرستادم اخیرم به وسیله یکی از استادان دانشگاه سمرغند خانم تاجیکی بود به نام بخار فرخ باهار خورم سمغم فرستدم برای استراوشن فرستدم در دو شمبه دو تا فرستدم امروز صحبت بود که برای دانشگاه و بسنی که بفرستیم که منجا استادی داره که مثل ایرانی ها پاشتش بادم کن. و اگر بیاد داشته شدید چند جلسه پیش من گفتم که در بسنی و هزو بوینی در یه زبان فارسی خیلی رواج بوده. ما یه شخصی داریم به نام سودی. سودی نامش ایرانیه. 24 دفتر پیرامون دراکات شرح مصنوی مولوی نوشته. خب این اگر اونجا خواننده نمیداشت چطور می‌تونید که 24 تا کتاب رو بنویسه؟ یعنی اینطوری زبان فارسی تا قبل اروپا رفته بود. ما خود هستیم دیگه کم کم تونجا که بتونیم میفرستیم به امید خدا که بتونیم برای همه جا باشم امید خدا درود بر استاد فریدون جنودی از کجا باید از کجا دانستیم نام سرایندی شاهنامه فردوسی است یسنا خوشویت از تهران درود بر یسنو این بیت از فردوسی رو بخونیم که در آغاز کار دقیق یاد میکنه چون دید گوینده یک شب بخواب گوینده یعنی من خودم که شمعی برا فروختی زافتاب چنین دید گونده یک شب بخواب که یک جامعه می داشتی چون کلاب دقیقی زی جا جایی فراز آمدی بران جامعه داستان ها زدی به فردوسی آواز دادی که می من خود جز براوین کابوسکی خود توت از تو دیویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دیویست و بیست چهارصد هشتاد و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و بیست و هشتاد و و هزار و و هشت رو محتاب رو از شبکه فرهنگ رادیو شبکه رادیو موج FM 106 مگاهرتز شبکه در کنار شما این رو برای شرمدیگان عزیز برخ میکنیم که این رو رو حتما گوش بکنن به دوستان و آشنایان حتما سفارش بکنن که بتونن از برنامههای های شبکه فرهنگ نهایت استفاده رو کنن استاد میان کلامتون شکر برخشید این شیرین باشید بفرمایید استاد درست درست که خص به سوی کر خیش به خروشی برامد ز زیران سپ که بخشش آورد آو خورشید و ماه یعنی يعني... که خصوص کشته نشده. سواری همینی شد نرم بههن سر و دیگه پرخوم گرم بهد به نزدیک افراسی دل از درد خسته دو دیده پراب بر آورد پوشید در از گفت همه پیش سالار طولان گفت یعنی کشه شدن چی برو جهان دور گشت از جهان امید بکندان جو کافور موی سپید سپه درشگفته شد از بحر شاخ خروشان و جوشان همه را شد الان رویه چند به رویه سفیده که از کوهسر بردمید طلایه سپخ را به همون ندید یعنی تلایه ایرانیان سپاه دوران را ندیدند بیامد به مژده بر شهریار که پردخته شد شاه زین کارزار جهاندار بهاینشست بر تخت قاج به سربر نهادان دلفروز تاج ستایش کنان پیش او شد سپاه که جاوید آدین. سزا بارگاه از جا بیامد سوی شهر سخت یکی نوع جهان دید رسته زی چقد چقده یعنی چون پیشتر از اون افراسی ها سخت رو که همون جاگاه سمرند و بخاره و تاشکند باشه تصرف کرده بود اکنون کنان رفتن جهان نو دید که جقد از اونجا گریخته جغد اونجا را را کرد از را حیدت به سختندرون بود یک ماه شاه همه سوخت شد شاه را نیکخوا صفح را درم داده آسوده کرد همه جست هنگام روز نبرد هر کس که بود از در کارزار از در یعنی شایسته هران کس که بود از, کارزار، از در یعنی بود از کارزار بدون نیرنگ و بند حسار نیرنگ چند معنی داره یکی اون در حقت خط آغازینی که نقاشی روی بوم میکشن که بر با پای اون نقاشی رو بکشن نیرنگ یکی کسانی که کار نخصینی ساختمون رو روی زمین میکشند که بر اساس اون طکننی ها آغاز بشه و ساختمون بره بالا یکی کسانی که طرقات تغییر بکنن برای کارها اینجا میگه نیرنگ و بند احصار اون چون سینمن برای اوین مذهبی ایران بوسون هم یه نیرنگ بودین اینه که چجوری بعدن وقتی کش دیگهگون شد دیگه این نیرنگ به معنی نیرنگ بود اصلا تلفظش هم تغییر پیدا کرد یه معنی دیگه بزود چه کرد به هر که نیرنگ به این معنی نبوده صحنه خستینه به دانش نیرنگ و که کسانی که میتونم کار بکنن در این زمینه برای من فی مثاح بوده. بیاور و با خوریشن یار کرد سر بدکنش پرز تیمار کرد، اوضان جایگاه ده کردن افاخه کمر بسته بود جنگ را ساخته البته بعدها در نبرد پسیم میبینیم که چرا از اینجا اشخاص اشخاصخوا استفاده کنم. سق و کشانی سحبل گرفت البته این رو همه، شما رو میخونن معمولا کشانی میکنن و حتی در باره پا... کاموس کشانی میگن اما اون کوشان درسته اولان بودن کوشان در شمال شرق تاجکستان حالا اگر اینو ما خفف بکنیم کوشان میشه کشان به سقط و کشانی سفر برگرفت جهانی بدون موندن در شگفت شد به که آمد سفر جهان روی که خسر همه سوی ها و روی جهان شد پر از جانبه شد گف و تورانیان به دجه ها روی نهادند و رویه دویسته چهار رو بینگردید که این سال باز همه درسوزه بود کشیدند بردشت پرد یعنی پرد سرایی که با ایران و هر سوی دژ پهلوانی به که این روز چون خور برای آمد زراق را این یعنی خور، خورشید از کوه خود چنین شدند. از بره چرخ زدن چراغ. بیامازد دیش جهن با ده سوار جانم یکی دیاز فزنتونی بود شد. بیامازد دیش جهن با ده سوار خرکمند و با دانش او مایه دار. پیش دهلیز پرده سرای همی بود با نامداران به پای یعنی منتظر بود تا بهش اجازه بده. من چون پیش خسرو رسید شد از آب دیده روخش را قدید. جا به نزدیک تختش فراز برای آسم آفرین کرد و بردش نماز چون گفت که نام و شرح همیشه جهان را به شادی گذار برای بون ما بر تو پرخونده دل و چشم بدخواه تو کنده بود. پیامی گذارم زرف اگر شاه را سان نگید شتاب. و از جهن گفتار بشنید شا فرمود زرگیم یکی زیرگاه یعنی یک تخت زرین براش گذاشتن نهادن زیر قلبمند مرد نشست و پیام و پدر یاد کرد چون این گفت با شاه کفراسیاب نشسته از پرپرد و موجگان پراب نخستین درودی رسانن به شاه از آن داغدل شاه تورانسپا خب داغدل برای اینکه که پسر شیده به تازی کشش شوزیگه سوگوار خود باید سوگوارم از سوگ و سوگ و سوچ اوستایی افتیه یعنی داخ سوگوار اینه که سیکل داخ سوگ سوز بر تنان رو روانش باره هست مخصوصا برای پدر یا مادری که فلزند رو از دست این سوز بر تنان رو روانش هست سوگوار این منی داره یعنی درگ رنج عمیق یعنی سوز سوزش آتش کاش که درد می بود کاش درد می بود خوستین درو بیرسانم به شاه از اون داغ دل شاه توران سپاخ که از آن سپاخ رو بلویم پناه که فرند دیدم به دین پایگاه یعنی نوی خوشی که خوزران افرندرون تیز پررون اغاق نهنگ درآور به دریای آب همه پاس با نام تخت ویند در و شادان به بخت ویند بزرگان که با تاج و بازیورند زیوه روی زمین مرد را که ترند اینجا بر بران باشه بیتر بلکه خطاب مستقیم نیست خطاب بفاصل است شگفتی تر از کار من م... پیشنا دادم شگفتی است از کار دیو نژند که هرگز نخواهد به ماجز گذند بدون مهربانی و آن راستی چرا شد دل من توی کاستی این اون مهربانی راستی که سیاه وخش من چرا اینطور شدم چرا کشتمش که به من فور کابوس شا بخش رد کشته شد بیگنا جگر خستان زین سخون پرزه درد نشسته به یک سوز خواب و سخورد یعنی نخواب دارم نخورد دارم. نمن کشتم او را که ناپاک دیو ببرد از دیرم ترس که هم خدیب. زمانه ورا بود بهانه به مرا زمانه یعنی عجل. زمانه ورا بود بهانه به مرا به درون شد فسانه مرا. کن که تا چند شهر تو اکنون خردمندی و پادشا. پذیرنده مردم پارسا نگه کن که تا چند شهر فراخ پر از باغ و ایوان و میدان و کاخ شدرستن در این کی جستن خراب به آمه و وخش افراسیاب یکی منزل اندر بیابان نمون منزل اندر بیابان یعنی کارمانسر آخوا و کارمانسر آخوا ایران بودی دیگه در اینباره بار پیشتر صحبت کردیم ولی خوب چورانیان که همه فهمیمشون مثل ایران بود و خوب ایرانی بودند نژاد در ایرانیشون اون هم کارباسه را می ساختنده یکی منزل در بیابان نماند به کشور جز از دشت به ایران نماند جز از کینه و زخم شمشیره نماند زمان نام تا رست است خیز من جهان آفرین را پسند به پیچان پیچون شدیم از از گذن در جنگ جوی همی بگومون نصد نهی آسابق از کیندلت یک زمان نگه کن بگید بدین گردش روزگار جذور را نکن برده لاموزگار که ما در حساری محامون تراست دلی پرزکین و پرازخون تراست همه در مرا گنج و در سپاه همه در نگین و همه در کلا همینجام کشت و همین همینجام خورد همینجام مردان روز نبرد زمستان و سرما به پیشندر است، که بر نیزه ها گردت افسرده دست، دستتون یخ میزنه رو نیزه ها هوای خواهی از اینجا سیگه شماله به دامن که ادره اندرفتن چین برای بوم ما سنگ گردد زمین زهر هر خانم بیاید سپاه نه تابی تو با گردش هور و ما و ریدون گمانی که در کارزار تو را بر به حد روزگار از اندیشه گردون همی بگذرد زرنج تو دیگر کسی برخورد فکر نکن و اندیشه که داری درست خواهد شد ممکنه که اینچنین نباشد